بسم الله الرحمن الرحیم دوره مبانی فقه نظام کلاس دوم استاد علیرضا ظاهری تا جمع بشن و کسی سوالی داره اگر میخوام کلی نگاه خیلی باز نه جواب راه Ah, aí. Um de... Tá ficando as almas do time? Nossa, aqui, tá aqui. Ah, ah, <coughs> Falava a pessoa de شما وقتی که رجوع می‌کنی به مکانیکی یه مکانیک نمیری که مثلا یه مکانیک ماشینه اول به این نتیجه می‌رسی که کجا یه ماشین مشکل داره. مثلا این باید پیش جلوبندیساز ساز، بارم پیش ترموزی باید بارم پیش موتورساز باید بارم پیش چی؟ باترساز, باترساز. ببین اینا درسته که همشون زیر یک نظامی به نام خود رو قرار میگیرم، ماشین قرار میگیرم ولی به این معنی نیست که اگر کسی که باتری سازه باید از تمام جزیات موتور هم خبر داشته باشن ولی به این معنی نیست که اصلا از کلیت ماشین سردر نیاره تونستم منظوران برسونم؟ یعنی در این حالی که طرف یک نگاه تخصصی و جزئی و مسئله محور داره نسبت به اون کاری که خودش باید در انجام بده این نگاه کلی هم به کلیت نظام باید داشته باشه فقط ساخت بشه هیچ چی از مثلا جلو بندی سر در نیاره هیچ از مثلا فرض نصاب موتور سر در نیاره هیچ نه یه کلیت میدونه ولی به معنای اینکه جزئیاتش و همه ابعادش و ریزشون و نیست. پس این هم همینطوریه یه حد تعادلی میخواد. ولی شما وقتی در جوزیات یکی یک بودی وجود میکنید به معنای عدم اطلاع کامل از سایر ابعاد نیست. ولی به معنای اینکه تمامی جزئیات موضوعات ریز موضوعات و اون علم هم باید بدونه این هم نیست. یه اینجوری تالتیه. بعد متناسب با موضوع فقه، باید بدونی که کدوم رو چقدر بکنیم وقتی مثلا موضوع فقه فرضاً خانواده است، مثلا اداری فقه تربیت خانوادگی کار می‌کنی، قطعاً دونستان مسائل فقه نظام بین الملل و فقه روابط بین الملل برات خیلی ضرورت ندارد شاید دونستنش باشه بالاخره دا یه حد ولی خیلی ضروری نیست ولی مثلا وقت که داری فرض و مثال فقه سیاست کار میکنی دونستان عباد فقه روابط بین ولی ضرورت بردستان دستگی به میزان ارتباط مشخص میشه که چه حجم از اونی که فقه رو بدونی و یکی هم میکنی کلام فقه رو اهداف فقه رو کلام کلامی که اتقای فقه به اون کلامه پیانم بارد بگیم یا بیکلامی میشه دوستان از یکی از جلسه قبلا سوالی دارن هستم من یه پرانتزی باز بکنم بگو هلی سوال تو پرانتز باید که که یه چیزه مربوط به نه مثلا اون واسه شخصی اون طوری که داش داره کار می‌کنه اون مؤسسه اینه مثلا هر که من می استاد عمراد دیگه من دارم به این فکر می چرا باید این کارو بکنم؟ مهم اینه که رو مسائل نظام کار بکنیم. ببین نخ طسمه اینها یعنی مسائل به روز نظام. نخ نظام انجام میشه نظام اسلامی مهم اینه که مسائل نظام اسلامی کار بکنن همین که رو مسائل نظام اسلامی کار میکنن یعنی که دارن یه گوشه کار میبرن مسئلی مسئلی مسئلی کار. مسئل مسئلی مسئلی دیگه مسئله کم نذیدون خب واضحه وقتی نظام مسئله مسئله یعنی مسئله ای که مساله است مثلا الان یه چیزی که ارزش اولویت نداره این مسئله نیست اینکه همه رو اولویت کار میکنن خب این ادعای خیلی سختیه ولی اینکه اکثریت رو اولویت کارمندان به نظر من دای داشتی ولی اینکه همه درست کارمندان یه دای سختیه ولی اینکه همه تلاش میکنن درست کارخوان یا مثلا درست کارخوان یک داشن نه نه مثلا سال سال نه برعکسه تفاید الان تو عملیات گیریم که اومدیم سراغ علم و حسن. یعنی برعکسه الان ما رفتیم توی جایی دیدیم که اوی شرد ما داری برگردیم که درستش کنیم. الان واقعا مدرسه و دانش آموزی ما هست میدنیم خواهد چیکارش کن فرهنگ اجتماعی ما هست سیاست ما هست بکلماسی ما هست چیکارش کن یعنی از اون مره <تصال> میتونیم بگیم اگر از اصل سوال بگوییم باز آماده ام. یا نیست؟ یه آن موضوعیه که اصلاً اصلی‌ترین موضوعیه که از این سوالی پررنگی کردم در مورد. مثلاً اگر همین جز کردی این جوره، همین کنار آماده که تو شهر بگی، چقدر مزومایی خبر دارند یا نه؟ اینو انجام می‌دهم. چه بسته پررنگی، ماده پررنگی، چپی پررنگی، آن بر اساس اینکه پت پررنگی است که استفاده پرباشون سیف تایم یه فرآیندیه که اگه همچین چیزی نشسته به روزا اونا بیان نتایجشونو بیان خاطر متویات قشنگه باید ادامه کارا بدید رو. بازم میگم که هر میز گرفته، چه وقت اون شده حوادثش رو اثرات داشت رو، همین حالا مثلا یه نفر میاد فورا، فورا واسه کراش همین دفتر برسونو. همینقدر که درمیجوره چرا شده رو چرا به من دراجور میتاله رو میشه. شما تو خونتون دستگاه چرخ گوشت داری؟ ولی جنسش چیه؟ فرقش با آب می بگیری چیه؟ فرق آهنش ها، جنس آهنش چی؟ نمیدونی، داری استفاده میکنی ولی، این حاصل چیه؟ یه فرایند علمی ها. خیلی پیچیده و گسترده کجا؟ همین ایراد نداره میخوام بگم که وقتی که شما دارید تو عرصه مصرف کالای علمی حرف میزنی هیچ لزومی نداره فرنده علمی قبلش درد بدونه حالا شما مصرف کننده ای خب از این جهت باید رو توجه داشته باشید که اون کسی که داره تولید علم میکنه یه فرآیند واسه تام میخواد که این به مصرف تبدیل بشه. اون غیر از اون مسئله چیه؟ تولید دل. یه فراینده دیگه میخواد. یه فراینده سیاسی، سیاست گذاری میخواد، فراینده اجتماعی میخواد، فرآینده گفتمان سازی میخواد، فرآینده که تبدیل به کارهای مصرفی بشه میخواد. همه اینا رو میخواد. تا چی بشه؟ تا برسه بازار بازار مصرف. این وسط اینجوری نیست که علم. اینجا تولید بشه فردا روز تو بازار مصرف مصرف بشه. این وسط هم نه دست های واسط لازم. و اینا زمان میخواد پله پله میخواد اینکه چجوری بیاد به اون بازار مصرف برسه میخواد اینا باید تی بشه. آره یعنی اینکه با هم میگه چرا این کاربر اینا تولید علمشون اینجاست ما اونجا هیچی خبر نداریین خب واض شما الان اینجا نشستی ولی مثل الان مثلا در میان روز دو تا ذره یا جدید کش کردن. خب به چه کار میاد؟ معلومه کار تو ولی 20 سال تو میگی این تبدیل بشه به انرژی برقی، بشه انرژی اتمی بره در خون شما شما استفاده کنه. اون کسی که این روز اول اتم و به مثلا انرژی هسته‌ای کشف کرد، اون روز اول اون مثلا انرژی برقی که در, در خون شما برسه را شما نمیدونید، یک علاقات واسط خورد خورد خورد دوراست به اینجا. خودتون شما الان باید یه حیثیت دارید مصرف کننده، یه حیثیت دارید تولید کننده. الان اونی که اینجاست اون حیثیت چیه؟ تولید کننده. اون کسی که روز اول انرژی هسته و کش نمیتونه بگه آها این ناکارآمده. بگن چرا؟ تو بغه خونه من هستی نیست. بابا اونم میدونه امروز کش شده ولی یه فرایندی میخواد که یه اون بوده اون کسی که اون کش کرده یه کسی دیگه. یه فرایندای دیگه، یه کارای دیگه. با بشه تا این تغییر بشه. بره. قال چی علمی یا غیر؟ يعني الان ذات علم خود علم هم علم مجرد هست نیست اصول توليد هزارت علمینه شما این تحقیق گری به این نتیجه رسیدی؟ اگه به نتیجه اشتباهین یعنی چی؟ این نقص قراره من جهلم اشتباه کردند که دوباره دوستان مشترک این که اون یه آزمایشی مکملی برای انجام دادن چون توی آزمایشی ما به کیمیا تغییر سوال قبلی پرسیدم سوال قابل نجاست که ببین ما چند مسئله داریم قانون ما واحد علم متخصصه ولی قانون واحده ولی فقیه واحده، سیاستگزار گذار واحده تو عمل ما مشکل، شما الان آماد اینجا نماز، نماست بیا شکستت یا کامله، اینو مرجع داری میری عمل میداری ولی هر جای ایران از طراقیان رو بشی به یه مقلق داری بمیشی یعنی نتواریت محسسا نمیده جمع میشه؟ چه میشه قانون،, قانون، سیاست نم واحده شما با هر مکتب فکری بخوای محسسا بزنی زیر یه قانون باید حمزه‌ای یه قانون من یه یه جایی بره دیگه. حالا نه لزومم اینجا. بالاخره تو قانونی تبدیل بشه به این نظام عملی این یک دو که خب تجربیات داره اضافه میشه، تکثرات داره، زامو میشه جامعه خیلی وسیعه. حالا <تص> من سازی کنم دارم، موقع این که بزیدن، باید، نظریه تهداسی کنم، اشاره مدیر، مدیر میشتاده میاد ساره، ده ها، و مثلا بیان رو سازی کنن، حالا یه دونه سوالی که این جوان پیش می آنشون همان روی کرد روی کرده فکر فکومتیه الان که حالا فکر مردی یه طوری بود که مثلا شاید بحثای میدانی و یه مکرار درکی داشته باشه، زدنیت داشته باشه، خودش روشت بیدا کنه اینطور مثلا ضرورت نداشته ولی الان مثلا مساعدت می این نقاض فکومت میکنن می کنم یه میزای یه خارک، یه زارک های میلنگه حصلاً یه طرف فقط اون فضای علمی شو می آمد وقتی کنن از یه طرف هم اون فضای علمی, می خب، اینجا اون فضا علمی که دارن کارم کنن این زهنیت ندارن آن این ها واستم واسه چه می دانی دارن و تراهی می کنن یه ریزشون از این طرف هم فضای علمی دیرو نشده اینجا الان هم دسته کار یک کار می مونه کار نمیدونم چرا چه اونجا یه نفری باید باشه که بیاد اینا رو بیادر سازی کنه مثلا اقتصاد اسلامی ما یه جنون مدیر مشتهده باید باشه که بیاد همراهی کنه خودش این حالا چطور میشه؟ کار کارچت نمیتونم چجور درشتن این کارچتش میفته جوابش مثلا لازه این نظری پردست لازمه مدیرش روی لازم نمیدونم بحث بازه یه مدرکی هست من نفهم نه الان برای هر که هر چیزی بخواد اجرا بشه نظریه لازم، مجری لازمه, لازمه، ناظر لازمه اصلاحگر لازمه همه این هم باید باید چارش به فقر باشیم این امروز از ماما که شکت پردیم نسبت به آیده این تحصیل سال؟ اشتی نم امتظار این امروز هره ما مابا، آزه برای مدواری شنیدیم مثلا به آیندهی تحصیل رو چیه؟ انتظار خاصی نداریم آز چه جدی میگن اصلا مسئله اینه که شما با اینا مواجه بشید خوب حدیم چید خوب همین هدف ما اینه که شما با اینا مواجه بشید برای تون سوال ایجاد بشید با تون هست سقه بعد با سفر باشه طلاب بعد با سفر خوب بعدش دیگه بعد شما باید برید دنبال اینکه دنبال مسیر خودتون رو پیدا کنید هر کسی وزیفه ای داره هر کسی استعدادی داره هر کسی علاوه ای داره هر کسی توانی داره هر کسی شرایطی داره نمی‌دونم از ته اوج کار علمی شه اون پدرش مریض میشه اون پدریش میره مشا وظیفه‌ش رو چمونه میره مشا ولی نمی‌کنه نمی‌دونم ليش ولی این مسئله که اینا مسئله است این خوش مهمه حالا اینکه هر فرد یا هر مجموعه چه مسیری رو طی بکنه کجا بره برای پای آینده‌اش چیکار مربوط به اون فرد و اون مجموعه است سوالت واضح ها، یکی هم قبلش پرسید کی بود؟ کی بودی که بودی که بودی ها شوار پرسید شما که با ما هم هنگ نیست چون این همون سوال پرسید. هست دیگه؟ خدمت شما عرض میشه که دو تا مسئله است یکی که ما توی بدیهیات تو منطق اه... نقطه بودیگه بدیهیات درسته؟ 89 بود یکیش تجربیات بود انقدر ارقام مختلفی اومد آره یکیش تجربیات بود که اون یکی که تجربیات بود طبق نظر اونایی که اونو قبول دارن اونجا تجربیات وارد میشه این یک دو اینکه تجربه باز تکامل عقله و اونجا هم گزاره تجربی ورود میکنه تو بحث عقل تو فقه ما عقل سوم من این که خود ان انصار اجرا و پیش و خود تجربه میدانی باعث قوت ازتظهار نسبت به متن حدیث میشه یعنی وقتی که شما مثل همون میگن صحبت های آقا دو سال پیش با تو کرونا بود یا سه سال پیش با همین خبرگان گفت تجربه این اسلامی تجربه دفاع مقدس احادیث توکل رو برای ما ترجمه کرد این این کلام آقا نیست مضمون یعنی این تجربه ای که ما کردیم توی دفاع مقدس آور مثلا اما گفت باقا با توکل میدانیه یه چیز توی تاقچه نیست ولی چهار چوباش مشقص نشده همیشه کارو میخواد، بحث میخواد، گفتگو میخواد. این اینجونیست که مثلا من میگم مونه اینقدر این قدره نه همیسته مرزم که که در این یه قسمت یکی هست در چیزا خلا این شده که تقریبه هیم شده یه ها این درست مثلا ما نظام ساده نظام بکنم و قبول در این نظام ولی این که بیرم یکی افتار رو بذاریم بذار من بگم دیگم از تجربه صرف علم ما خارج تجربه تو کلاب استقرا. در بهترین حالت استقراش چیه؟ ناقص استقرا ناقص هم یقین آور خجتم راحت شو مسئله اینه مثلا تجربه نیست هیچ ارزش علمی مون نبا نبو علم تعریف علم غرب ما با تعریف علم ما ارزش علمی تو علم غرب این با ارزش ترین علمه پیش ارزای قلطی توی اقتصادش میگن عرضه کم باشه تقاظه زیاد باشه چه اتفاقی میفته؟ چی؟ گرونی میشه, گرونی میشه. ما چی میگیم؟ میگیم عرضه خیلی هم کم باشه تقاضا خیلی هم زیاد باشه تقوا هم باشه اصلا گرونی؟ نمیشه چون گرون فروچی حاصله چیه؟ این گزاره که ارز کم بشه، تقاضا بشه، گرونی میشه، گزاره که گزاره ای که 200 سال اقتصاد داره با اون میره جلو. همه دنیا هم داره تجربهش ولی دین ما میگه چی؟ اینجا اینو است هست. عمل نیست دین. است یعنی تجربه دینی اینجا نیست. تجربه علم چیه؟ غربیه. اگه دین وسعت بود این اتفاق نمیفالت. این تجربه چیز دیگه باشه. چون دین اونجا بردن وسعت یه تجربه دیگه شد خب دیگه یعنی این تجربیات خیلیش تجربه آدم چیه؟ این از مسئله مثلا ما که تبه اصلا و در سنتی مثلا نمیم یه من که و با اینم تجارت, تجارت بود بعد از اسلام ما دوباره گفت اسلام گفت تجارت اسلام ما خیلی جاشون عوض کردی. قبل از اسلام خمس بود نه مثلا بود اینا ربا بود قبل از اسلام ربا حرام بود آه. حرام بود موسی اومدید دارن قومش ربا میخورن زد هم دعوا کرد جنگید ایسا و بسید ایسا ماسید ماسی تو عمرش یکی دو بار از سوانی شد کلوم یکیش سر ربا بود <تصفيق> چه؟ <تصفيق> میخوام اینو بگم میخوام میگم که به معنای تحتیلی اومدن اسلام به معنای تحتیلی نظامات غربی قبلی نیست ولی به معنای تکامل و اکمالش هست اینو میتونیم بگیم آره قبل از اسلام نماز نماز ولی بعدش چی؟ ایمد این یعنی که عبادت کامل شد تجارت کامل شد اناسار دینی تو اینا ورود کرد ما که نایی به قبل اسلام برگردیم میخوایم نظام اقتصادی در بیاریم که داخلش چی باشه؟ اسلام باشه دیگه میخوایی بگی که قبلش بوده یه مقدارش تحیید شده یه مقدارش رد شده و یه مقدار زیادش کامل شده این امکانی هست که مثلا اسلام الان تایید. که گذشته. ولی اگر که بانکداری الان تایید بکنه به شرطی تایید میکنه که چیه؟ واسه اکمال دین بشه. درسته؟ اون جایی که نقص داره رو چیکار کنه؟ ردش میکنه. اون جایی که باید تکمیل بشه تکمیل میکنه اون جایی که حرام رو بذاره کنار. بانکداری الان همین مگه ما الان بانکداری الان ردش میکنیم. شما ما کنه از دفتر آقا با بانکداری حرام ندارم یه ولی کامله هیچ کس امن نمی‌کنه کی بعد کاملش کنه کی دین بعد کاملش بکنه چه جوری کاملش می‌کنه عناصری دینی رو توش وارد بکنه چه جوری عناصری دینی رو توش وارد بکنه یکیش فقه یکیش عناصری دیندارانه یکیش تقواست نظامات تقوامحوری درست شد طبیعی همه نظاما اینجوریه اینم یه مت مسئله اصلی اینه تو همه نظامات با تقوا کاری که اسلام کرد این بود. تو نظامات اقتصادی عرب جاهلی تقوا رو انقدر ورود داد، انقدر ورود داد که فقرا اومدن به اعتراض میشه پیامبر. گفتن پیامبر این چه دین نیاورد؟ این دین پولداراست، دین ما نیست که. هر چی ثوابی گذاشتی واسه پولدارا. این اعتراض یه جنبش ایجاد نه یک دو نفره یه جنبش راستاً سوراخ یخه پیغمبر آمد گفت این چه دینی آوردی هرچی هست برای پولداراست ما کاری تو دین دین پولداراست پیامبر گفت نه یه چیزایی هم برای شماست گفتن چی؟ یه ذکر گفتو اینو بگید انقدر ثواب داره فلان داره فلان داره خیلی خوشحال شدن رفتن پولدارا شاکی شدن اومدن سوال پیامبر گفتن چرا اونا دارن ما نداریم ما میتونیم بگیم پیغمبر شما هم بگید آزاد کردن عبد. این کار فقرا نیست که تغییر عقل نداره که عبد مثل ماشین لوکس امروز بوده اون موقع مثلا پراید اونم رو اون موقع کو ها اون عاشقش پراید اونم بنده خدا نبوده که بنز اون موقع بوده عبد این که گفته آقا یه روز, روز اگه عبد آزادکن مثل اینکه به طرف امروزی که آقا یه بنز بده به یه تغییری یه بنز مثلا بده به اینجوری یعنی اینقدر تقوی رو آورد وسط مردم که پولدار ترین ها چیز میکردن یعنی میدادن بره که بیان رو به خیلی یه سلام بفرستم بذارید مقدمه باز مربوط به همین سوالات بگم بعدش بریم رو موضوع بحث در این که بعضی در مورد خود دوره و فضای دوره بعضی دوستان یا مثلا اکثریت دوستان ما الان هلوش دو سال دو سال رو خورده درگیر کرونا و خیلی از جا کلاس مجازی بوده تعلق بوده اصلا کلاس نشستن مثلا سقف شده حالا کلاس نشستن رو میگم آن ما چون اکثر کلاس خوابیده رفتیم نه نشسته خوابیده رفتیم مجازون دیدیم بنده خدا استاد راسته خدا که همونم دراز میشه ولی بعد خود بنده منم هم, هم که الان مثلا میلیم سری کلاس همون جوری برا این سخت میشه و حال و حسلش انقدی نداریم مثل قدیم طبیعیه یه مقداری مقاومت در مقاومت این فشار فشاد این یه وقتایی در مورد تضای دوره و اینها و یکی هم که چند نفر دوستان آمادم پرسیدم که الان خود بنده کجا مشغول و اینها بنده الان فقط کار علمی میکنم یعنی هیچ جایی کار نمی کنم هیچ جایی مشغول نیستم فقط کار علمی میکنم و درست نمید. و به نظرم هم میاد که الان کاری که می کار به نظر خودم میاد دار. که کار با اهمیت هم دستی می کنم این بحثای فیلت افتدام نه نهی که بهم از این باش شما ها برود نکنید ولی فعلا کار من اینه من اگه یه موقعیت این باشه چیز می ولی فعلا اینجوریه در مورد اینکه شما چه مؤسسه ای یا چه امتدادی بدید حرکت علمی خودتون رو در آینده این هم یه بود که باز چند نفر بنده پرسن ا حتما بحث علمی که الان علم دارید رو به قوت داشته باشید به قوت داشته باشید خب اینا هم بدونید ولی اینکه برای آینده چه برنامه‌ریزی داشته باشید با یه دوره اینجوری تصمیم گرفتن سخته تجربیاتتون رو زیاد کنید مؤسسات رو بشناسید اهداف رو بشناسید با صلحات آقا آشنا بشید همه اینا رو داشته باشید بعدش یه بشینید برنامه‌ریزی مثلا با مشورت مشورت بگیرید حتما از افراد صاحب تجربه بعد یواش باش به نتیجه برسید که چطور امتداد بینید کار علمی، فقری، کار عملیاتی اجرایی خود فرمان یعنی این یه ترایندی که سری نمیشه با یه دوره دو سه روزاد به نتیجه برسید اگه در مو دو سه جمعه هم سوالی دارید بازدخورت نتونست که این شاهده خیلی خب یه سلامه دو در مورد عنوان کلاس روش چی بود؟ چیه یه بار ده تحلیل کیفی یعنی که چجور تحلیل کنیم که کیف کنیم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <خی> با را کن کلاس نیستان. هم رفتیدن چونه شب خواب میبره نه یه درگی یه شیره درست میشن خودم چستم دوستان در مورد دانه که اینجا هستن در مورد پژوهش کیا تا حلقات کردن؟ هر کاری هر کاری هر کاری در هر حد هیچ <تصفح> <تصفح> بود موضوعه؟ یا صدها که موتور بشه که اون کار بیاد این بین صدها تا هست مو شو تو خب دیگه بقیه دوستان کار ها به کار در واقع و سو که جو مبارک علی صدر واثق میکنه یا نه یہ ہاں کوئی چاستہ نہیں ہے وہ ضرورت اوپر دے رہا ہے ادلشن دسواں خوب سارے خوب. در شما تا نکردی؟ یه جوری میگه حقیر افادم من بزرگتر افتار زبط میشه اگر نمیدونم که که که دیگه دوستان توامل معسته در انگیزه درست از منظره رو باید ببینید من حالا موضوعاتو دایره شد دوستمون حالا مثالا یه بار دیگه موضوع تو بگو اوامل موثر در انگیزه تحصیلی از منظر. خب کردی؟ چه موضوع فرضیت رو تیگی و رفت چرا کنه باید خب چجور رفت چرا کنه باید همون فرضیه فرضیت رو چون خود اینسان داره دو بوده مدرور و دیست میشه خب هزین بس کارهایی که بکنه اینا تأثیر داره هم بسی دیست میشه تأثیر داره هم بسیر رویش خب هزین زهد نیوایات چون مربوده مربوده هم جسم هم بوده بوده انسان و دسمت هایی به به و بعد هم به خب چجوری؟ به کار پس چیجش نیست منظر از این منظر گشتی؟ یک ساله یک سال ها چه گشت که بخوایی به این سوال جواب بگید؟ چهار تا جواب دید یه تحقیق چهار تا جواب چه گشتی؟ هی جواب، هی جواب، هی جواب، منظره منظرهای میتطلب؟ شما وقتی با یک سوالی مواجه میشید و این سوال رو چطوری بیارید به جواب برسونید؟ به این میگن چی؟ روش تحقیق روش تحقیق یعنی چطوری بیاید از سوال چطور وجود میاد؟ شما یه مشکلی یه چیزی یه جایی تو بیرون می بینید و ایجاد سوال رو مسئله میکنه برای شما مثلا ایشون دیده تو عالم خارج مشکل چی هست؟ انگیزه تحصیلی هست میخواد به این جواب بده به این نسهره انگیزه تحصیل چون طلبه است رفته به منابع روایی حالا چجوری از منابع روایی حرکت بکنیم بیایم برسیم به پاسخ به سوال، به این میگن به چی روجو کرده به حدیث چجوری باید به حدیث روجو کنیم کدوم حدیث معتبره چجوری احادیث رو کناره هم بچینیم؟ چجوری از خ... کنار هم قرار دادن این نتیجه بگیریم؟ اینا ها که شما توی روال تحقیلتون بهش جواب جواب نداردید اصلا اینا بحث نمی کنی. که چی؟ که الان مثلا من رفتم اینجا مثلا الان من بخواهم ورود بکنم به اینکه احادیث رو چطوری بچینم که به جواب برسن برام با چه ترتیبی، با چه روشی، با چه مبنایی برم سوراغ احادیس چطوری احادیسو تقسیمندی کنم اصلا فرضیه من از کجا آمده از کی میگه این فرضیه باید درست باشه، غلط ماشی, ماشی؟ فرضیه به شما ساختی بعد برای این فرضیه دفتی سراغ احادیس احادیسو شکل بزید برای فرضیه خود برزمین پس این که اصلا شو تحمیم. از این جهت اینکه ما چه حرکتی رو داشته باشیم از سوال به اون مسئله بیرونی که اونو خوب بفهمیم میشه روش روش تحقیل اینجا مبانی نظری شما خیلی مهم و خیلی تأثیر بزاری بحث روش تحقیل این مبانی نظری که دارید مثال میزنم اگر که شما قائل به این باشی که تجربه مقدمه بر حدیثه مزهد. تقریبا حرف این دوستمون زدیم که ما این همه تجربه داریم تجربه مقدمه بر حدیثه اگه این مبنای نظری رو داشته باشید روش حل تون چیه اول؟ تجربه یعنی اگر بخواهیم برای این سوالی که این دوستمون پرسید که علل ضعف انگیزه یا اوامل محصر زرف در انگیزه چیه یا انگیزه دهی چیه به جای اینکه بره سراغ روایت اول اول باید بره سراغ بگید تجربه بره شروع کنه از ملت بپرسی خودشون مستنستی یعنی این چیزی که روش رو برای شما ترسیم میکنه و جهت میده بیشتر از این که خود روش باشه مبانی نظریه که مبانی نظریه شماست که میگه از چه روشی تحقیق رو انجام بدید این خیلی مهمه مثلا یه مثال بزنم شما عمده تحقیقاتی که الان گفتید روی چیه؟ رو متنه <تصفح> یعنی یه سری موتون هست میخواد رو اونها پیجوش انجام بدید. تحقیقات خارج از متن من نیدم الان کسی بگه تو این چند تا هست اگر کسی داشته بگی یه تحقیقی که خارج از متن بوده باشه هر تحقیقی داشتید مد بوده درسته؟ دارین؟ که؟ چی؟ چی؟ یعنی الان بزن تحقیق میکنی در آیات رو باید آیات رو متن مطمئن دیگه در اندیشه امام امامه یا نمی کنید در کلام. کلام کتاب دیگه یعنی منبع تحقیق همه از چیه مطمئن یه میدانو چی که که که که که دوستان رو باشه شبیه هم توانی زر زر زر نه و سر خب از بین دوستان رو بید مثلا این یه ذره خارج متن. عمده کتابخونهش که متنی میشه دیگه. عمده تحقیقاتی که دوستان دارن میکنن رو متن. رو متن میشنن میگن که خب الان ما می‌خوایم بگیم که آقا مثلا در مورد این متن یه چیزی رو می‌خوایم تحقیق بکنیم مثلا یه حرف از امام آغاز یا یه حرف از حدیث سوره روایت رو می‌خوایم در موردش تحقیق بکنیم. خب روش تحقیق ما چیه؟ مثلا الان ده تا حدیث داریم پیرامون قبار غلیز که اون دوستمون گفتن حالا میخوایم تحقیق بکنیم که بینیم آیا قبار غلیز روزه رو باطل میکند یا نمیکنه به بلافاظ سوال میشه خب چجوری میخوای تحقیق کنی؟ میگه که من احادیس رو میارم اینجور میچینم اقوال فوقه ها هم میچینم میگه میراد نداره چجوری میخوای از حدیث بفهمی؟ این روش تو از حدیث چیه؟ آقا روش رو فهم شما از حدیث چی بوده خب چه جوری استثاره خب اون این اثرات اطلاق شماست به من توضیح بده که چه جوری این کارو کردی؟ از من چرا باید فهم شما رو قبول بکنم که چرا دیدی اصول تا هست نسهار میدونه تو جس سوال من جوابش تو اصول نیست الان یه متنی من دادم به شما شما داری میخونید منم اونو رو میخونم دو تا فهم داریم کدومش درسته از چه روشی میخوای بگی فهم شما درسته یا باید قائل بشی که فهم هر جفتمون درسته که میشی نسبیت یا باید بگی که آقا فهم یکیمون درسته که ملاک میخواد روش میخواد چیه روش چجون میخواین ارث ورک کنی؟ روشش چیه؟ روز ما چاپ کنید؟ من هم میگم من اورفینو میفهمم شما هم میگه اورفینو میگم. ان در بابا بدون ناز. چطوری؟ به چه روشی؟ ببین میمونه ببین همین همین شما با اینکه این, این تحقیق رو کردید ولی اینجاش موند. در صورت که اعتبار تحقیق شما پاسخه به این سواله. که بگی فهم من فهم چیه درستی اگر بتونی اینو بگی تازه تحقیقت معتبره اگر نتونی بگی معتبر نیست هستن بهش میگن مجموعه ای از چی بفتار خب این که کار شما چیه تحقیق نیست که حرف اونا رو گفتنه شما میگه من از حدیث این رو فهم اگر من بیام یه حرفی خلاف حرف فوقه ها بزنم بگم من اینو میفهمم شما میگی حرف قلطه چون فوقه یه چیز دیگه گفتن این نمیشه که آقا الان شما یه نفر یه چیز غیر از همی اونا بفهمی. قلطه؟ دوزمن تموشتی تموشان احتمالاً ببین تو داری کار تحقیقی می‌کنی باید حقو بگی من خیلی ها شما هر متنی می‌ذاری جلوتون با این سوال مواجهید من چطور این متن رو بفهمم چه این فهم من چی باشه, باشه. بعد بلا فاصله سوال خب اصلا شاید فهم منم درست باشه فهم اونم درست باشه میشه چی این؟ نسبیت گرایی ما قبول داریم نسبیت گرایی ها قبول نداریم ولی برای کسی که قبول داره هیچ مشکلی پیش نمیاد میگه آقا من وقت ما اینجوری میفهمم هرچی میخواد بگه بگیر چی؟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 این روش چه چی؟ ازایییم اگر ازاییم مثال این بخیرات این بخشیرات ممکن مثلا اختلاف تپنه این بخشه های مختلفه اصلا که مثلا ما از یه لبزی یکی چیز کنی اصلا یه سوال بپرسم من شما وقتی رو میخونین دنبال این که شما خودت اون چیزی که برداشت میکنی متن رو بفهمی یا دنبال قصد نویسنده ای آفری من دنبال قصد نویسنده هم, هم نویسنده قصدش چی بوده بفهم میکنه دیگه آه ببین پس دنبال قصد معصومی ای نفهم خودت پس تازه اصلا سوال عوض میشه من چجوری قصد نویسنده رو من بفهم بفهمم اصلا دوباره سوال تازه بدتر شد تا الان سوال این بود که فهم شما از کجا درسته سوال بعدی من با یه متن مواجه شدم چجوری بفهمم قصد نویسنده از پس متن برم تو قصد نویسنده قصدش تقییه بوده قصد تو چجور من بفهمم از متن؟ تو قواد اصولی که فقط استثارو میگه آره میدونم بحث که با اصحالت الحقیقه من پی ببرم به قصد نویسنده قصد نویسنده اصحالت الحقیقت چیزی بهش نمیگه که <تصفيق> نه حقیقت اصلا برفرض حقیقت مسئله اینه که همون حقیقتی رو که گفته به چه قصدی گفته قصد با حقیقت و مجاز فرق میکنه قصدش چی بوده خود شما کنید ما پیگیر قصد معصومیم رو حرف فقیه رو میخونیم درست کنم کنم که از متاوضوعه امراده یکی داره دله میگم همش برفرض بگیر که حقیقته آقا شما یه حقیقت رو گفتی به قصد این که ذهن مخاطبت رو منحرف کنی شما هم شما یه حقیقتی الان به من میگی به قصد این که ذهن منو منحرف کنی من هم یه حقیقتی رو به شما میگم به قصد این که اصلا شما رو به غلط بدنازم جفتمونم حقیقت میگیم. این مورد جدی. اینکه شما رو برات نازنین، این خب. این این خب همه خوبه، خوب داریم خوب پیش می‌ریم. حالا این قرینه رو چه پیدا کنیم؟ روشش چیه؟ آه. شما برای کارت اینا رو گشتی؟ اینا مسئله است باید همش بیاد فهم من چطور باشه غصت چطور باشه شما نمیتونی با یه گفتن اصالت الحقیقه و اصالت مثلا مراد استعمالی همه اونا رو بذاری کنار مگه میشه مطنه بنون غصت داشته باشه مگه میشه ممیشه. اینا سوالاتیه که مواجه جلوی ماست برای تحقق اصلا از اون بیم کنار بالاتر شما وقتی با یه حدیثی مواجه میشید مثلا الالما سلطان الالما وقتی مواجه میشی با یه حدیث همینجوری یه پیامبر یا مثلا یعنیم الالیزیم و سلطان من پیامبر دیگه درسته نبویه چی امامالی مطمئنی اگر که امامالی یه های نایماده بسلا توی جمعی بسلا نایی کم الالما سلطان که قبلی داره، بعدی داره، زمانی داره قصدی داره، به کی گفته، مخاطبی داره اینا چی هم؟ کجا چقدر تأثیر دارن؟ ببین روش اینجاست روش اینجاست. یا یه چیز مسئله دیگه، بیایم پایین تر شما الان مثلا، دیدید دیگه این جمله رو از آقا نوشته اینجا بر باید استعمال فقهی، چه استعمال فقهی باید بر اساس فقه اداره نظام باشد این حرف درسته. همه الان شما این جمله رو گذاشتن اینجا از صبح تا الان از صبحکن نه از... من همهی حرفم درست بودم قبلی هم. از اون موقع اومدن دارن در مورد چه حرف زنن فکر نظام هر کدوم هم یه تعریف رو دادم کدومش با کدوم روش به این تعریف رسته. چه جوری یه حجم بالای سی ساله صحبت های آقا رو داریم. چطوری ما اینا رو اصلا همش رو یه جا ببینیم؟ با چه روشی؟ با یه جمله آقا که نمیشه؟ سی سال بعد بذاری کنار هم یه جا ببینیم؟ چطوری؟ چه, چه روشی؟ یکی بود کرد کرده؟ آقا کی بود؟ آقا نه ترسید، بگید، پا شما بوده؟ چی بود موضوع؟ چجوری رفت سودا آقا در درآوردی خب بیانیه قانون تو هم که خودش هست شما چیکار کردی آره. خب چه آقا استفاده کردی یعنی مثلا الان شما رفت یه سری بیانیه تو انتخاب کردی دیگه درسته خود بیانیه رو که پرینت نگرفتی بگی آقا این تحقیق من یه انتخابی کردی یه فرایندی روش انجام دادی چطوری میرتو خب چه جوری رفتی سوال سراغ فیشای آقا, فیش آقا. خب آقا الان شروع کردید تحقیق چیکو کردید سوالایی که دارم جواب خب چه جوری گشتی آره آره, آره خب چیکا کردی تو سایت کلید واجه خب کلید واژه خب کجا معلومه درسته برادر تو آجرارو شناسید و دلایلی واشو تو به به این در روز همین میگه میخواهم در مورد همین, این همین. اصلا علم دیگه اعتماد می کنی مثلا اینه که من می خوام به حرف تو اعتماد بکنم باید بدونم آقا تو تحقیق از چه شیوهی رفتی که من مطمئن بشم که خروجیش نظر کیه حضرت اون رو پله پله چی بوده تو چجوری رفتی رو سوراخ صحبت‌های آقا مثلا میگه من سرچ کردم سرچش نشد که منم سرچ می‌کنم ما میگه آقا سرچ چجوره چجور چیدی بر اساس چه منطقی انتخاب کردی چطوری اینا رو ارتباط دادی با هم کدوم اولویت دادی کدومو محکم گرفتی کدومو مطلق گرفتی منطقت برای مطلق گرفتن چیه منطقت برای اینکه اینو, این اینو بذاری پایین چیه منطقت که بگی این اصل این فرع چیه درسته؟ اینا همش برای بعد از چیه؟ برای بعد از اینه که بگیم فهم شما از آقا چیه؟ درسته اینا همش حرف دیگه این سوالات واسه چی بود؟ واسه این بود که ما بگیم مسئله روش مسئله کلیدی تحقیقه شما اگه اینو پاسخ ندید اصلا نمیتونید اعتبار تحقیقتون رو برای فرد سالس اثبات بکنید نمیتونید آقای من خدا گشت صحبت‌های آقای رو در آورده باید ترتیبی چیده من بگردم این چیزای دیگه پیدا کنم یه ترتیب دیگه منطق تو من باید بگی منطق تو منطق تو ما اگه تو اینا مشترک نباشیم نه اینکه اشتراک بعد لزومن باشه و شاید مثلا شما یه تحقیق می‌کنی با منطقی مثلا من اون منطق قبول نداشته باشن ولی منطق شما منطق درستی باشه کار علمی ایچه مشکلی منطق خیلی مهمه. که آقا منطق فهم من از منطق روال تحقیق من این است منطق فهم من این است منطق کار من این است من اومدم صحبت های آقا رو مثلا زیل فرض مثال میزنم آقا هر کسی رو هر متنی رو مثلا میخوام در مورد فلان اونسا رو کلامی صحبت بکنم خب کتاب کلامو کلام رو انتخاب کردی طرف برای من فرستاده تحقیق در مورد فلان آیه من کار تفسیری کردم بودم خیلی خوب پنجت تفسیر رو آورده گفت آقا من این 5 تفسیر رو آوردن بینشون جنبندی کردم بلا بر چه منطقی رسیدیم این پنجت تفسیر با چه منطقی این پنجت تفسیر رو انتخاب کردی خب منطق باید باشه دیگه سکه که تا پنشتر کجا اومد؟ منطقش چیه؟ چرا این اولویت بدی؟ این اولویت ندادی؟ اینا اون مسائلی که شما باید در تحقیقتون بهش پاسخ واضح و علمی بدید و اگر این کار نکنید چیه؟ تحقیق شما مجموعی از داستان است. چی؟ این خیلی مهمه علت این که فقه به عنوان یه روش الان برای ما مرد قبوله به خودتان اینکه روشش منقه بوده همه مشخص بوده باید این روش رو بره. هر هرکی از این روش تخطیم میکرده باید این کار فقی نیست ولی الان باید دقیق تر بشه الان باید واضح تر بشه اون انصار کیفی چیه که روشه تحلیله روش تحلیل و تحلیل تحلیل رفتن آره. آره کیفیش چیه می‌تونید بگی؟ خب بیشتر ببینی ببین یه مثال بزنن چند روز پیش یه محقق استرالیایی اومده بود حضرت آقا رو با شاه مقایسه کرده بود. آورده بود روش تحلیل کمی استفاده کرده بود چجوری گفته بود حضرت آقا تو ده سال سوم رهبریش با ده سال سوم ره حکومت پهلوی ما مقایسه کنیم محمد رزد. این نا گفته بود هر ده سال سوم. بعد آورده بود گفته بود تو این ده ساله سوم هم حضرت آقا این تعداد کلمه حرف زده شاه این تعداد کلمه حرف زده میخوام منظر نگاه رو ببینید بعد گفته بود از این تعداد کلمه که شاه حرف زده این تعداد دفعات ایران رو به کار برده آقا این تعداد کلمه ایران رو به کار برده درصدی که آقا استفاده کرده از کلمه ایران نصف درصدی که شاه استفاده کرده از ایران به این روش یا روش چیه تعداد بود آقا من میگم بفهمم این مفهومی تو ذهن این نفر اهمیت داره میگم آقا تعدادش این پیش‌ورز اون آدم هست. گفته بود اون دفعاتی هم که شاه استفاده کرده از ایران مثلا 40 درصدش گفته ایران بزرگ، ایران عزیز، ایران فعلا. اون تعداد دفعاتی هم که مقام معظم رهبری از ایران استفاده کرده، گفته ایران اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، بیشتر اسلام و ایران رو به هم پیوند داده. پس نشون میده که کی اهمیتش به ایران بیشتره؟ <تصفيق> ببینه این یه شکل استدلاله بهش میگن این روشه تحلیل کمی یعنی با انصار کمیت میخواد یه چیزی رو از مت و یا از فکر طرف مخاطبش برداره برداره این یه روشه مثلا شما میخواد بفهمید برای امامان معصوم ما انصار ولایت چقدر اهمیت داره یه راش نیم یا چند بار بودن. به کار بردن ده بار، 20 بار، سی بار، پنجا بار، ست بار، دیویس بار، بزار بار، نمیدونیم این خودش چیه؟ یه روشه. بهش میگن روشه دحلیل کمی مدلای های مختلف داره، ولی تکیهش رو چیه؟ کمیته نه کیسیت حالا کمیت های مختلف یه بار لغت رو میگیرن یه بار پیوند یه لغت با لغات رو میگیرن یه بار دفعات تکرار رو میگیرن یه بار فلان میکنن. برای اینکه اینها مشخص بشه اصلا نرمافزار های متدی تحلید م <تصفيق> تو که گفتن با ط می گفتن. نرم های ساخته شده. که الان شما مت رو میدید متن ها رو میدید بهش خروشونده این قدی این قد این رو برده اینقلین رو برده این این کار کرده اون قدر کار کرده. ارتباطات بین مینه. آقا این تعداد بار آقا اقتصاد و فرهنگ ارتباط داده. پس نشان میدهد روز این آقا اقتصاد با فرهنگ ارتباط وسیع و مستقیم میکن. این تعداد بار فرهنگ و بر اقتصاد مقدم کرده. این خودش یه روشه یه مسئله است یه بستره یه مدلای دیگه داریم نه بیشتر رو چی تکه میکنن؟ رو معنا کیه کنن رو معنا اونا میگن روش تحلیل کیفی یعنی برای تحقیل بیشتر از اینکه رو تعداد دفعات و ارتباطات تکیه کنن روی کیفیت بهرورداری از معنا تکیه میکنن. مثال می مثال میزنم. مثلا مثال قواعد اصولی ما اصلا ما توی اصول چیزی به نام عدد نداریم همش چیه روی کیفیت مطلقی یا مقید محکم یا متشابه اینا رو چیه؟ رو کیفیت مصابه دارند تکیه و اینها هم یه مجموعه گستردهیه یه مجموعه متعددیه مثال می زنم. شما مثلا یه روشی هست به نام روش تحلیل مضمون یا روش های مختلفی هست روش تحلیل گفتمان که اینا بیشتر تکیهش رو چیه؟ رو معناست. میاد میگه که آقا یک متن از مثلا آقا چه مزامینی دارد میاد جزء جز، کلام آقا رو مزامینش مشخص میکنه میگه این جزء این مضمون رو داره، این جزء این مضمون داره، این جزء این مضمون رو داره. بعد مرحله به میگه خب این مزامینی کوچیک کوچیک چه ارتباطی با هم دارن؟ میاد یه مضمون بزرگتر میگه این مزامین بزرگتر چه ارتباطی با هم دارن؟ یه مزامین کلان این مزامین کلان با هم چه ارتباطی دارن میشه منظومی فکری. شما برای اینکه که یه انجام بدید باید مشخص کنید که چطوری با چه مبنایی با چه روشی سراغ مطر میخواید برید اگر این رو مشخص نکنید نمیتونید یا یه مثال دیگه آقا اون آقایی که قبار کار کرده بود میخواد صحبت های ها رو با هم جمع بکنه صحبت های متخصصی رو با هم جمع بکنه با چه روشی باید کار کرد بعد کار کرد باشه هر کدوم ویژیگاه خواست خودشون دارد هر کدوم برای یه هدف به یه مقداری یاد آره. حق افت اینجوری نیست که بگم این هست و این نیست وقتی داریم توضیح میدیم مثلا این این, این این این این الان جامد هست یا نیست مستطیل هست یا نیست شی هست یا نیست هر کدوم از اینا رو بخوایم پی ببریم به کنش یه روشی داره بخوایم ببریم به جنسش باید بریم تو علم شیمی بخوایم پی ببریم به مقاومتش باید بریم تو فیزیک بخوام ببریم به روش ساختش باید بریم تو مکانیک بخواییم ببینیم به کاربریش باید بخواییم با با با با با با با با هر کدوم برای یه جایی یعنی این چیزایی که بنده دارم میگن بله بله ترکیبی هم میشه خب آقا ما صحبت های فوقه ها رو داریم بیست تا فقی اینا رو چشو با هم جمع کنیم اصلا اونو بذار کنا الان خبر که آقا تأثیر عدم انعقاد برجام در وضعیت اقتصادی ما در وضعیت امنیتی ما خب الان می به این سوال پاسخ بدیم چطوری؟ می نظر متخصیصین رو بدونیم چجوری؟ چجوری اینا رو با هم جمع بکنیم؟ اینا هر کدوم روش داره روش جمع بین نظر فقه ها روش داره روش جمع بین تفکرات متخصصین روش داره روش ورود خروج ما به متر روش داره روش جنبندی منظوم فکری افراد روش داره هر کدوم از اینا روش تطور یک چیز مثلا مسلحت از زمان شیخ رزی ما اونصور مسلحت اومد تو فقه فقه مون. اومدن گفتن آقا با سلطان جایر باید همکاری کرد یا نکرد فقیه چی گفت گفت الان تو شرایط فعلی مسلحت اینه که شما هم بکنید درسته؟ ها؟ آقا این مسلحت اومد تو فقه ما این که دارم میگم یه روش ها بعد ها این مسلحت گشت گشت گشت گشت انقلاب حالا سانسوری دارم میگم رسید به انقلاب تو انقلاب بودن خواقا این مسلحت رو چی کار کنیم مسلحت شد چی؟ شد شورای خارجی یه تفکر شد یه شکل چجوری سیر تفتورش چیه که یک تصور اسلامی یک مفهوم اسلامی تبدیل بشه به یک ساختار آهای روشش چجوره مباسات کجا بود چی شد چجوری این چیلی چجور؟ اینا هر کدوم چیه یک داستان و یک روشی داره یک مسیری داره من بود تو این وقتی که داشتیم تنها کاری که میتونستم بگم این بود که این چیه بیام اینو فقط برای شما نز... جا بندازم که اولا روش مهم است دو روش متکیه به عناصره نظریه شماست اگر شما قائل باشید الان هستنا یه ده قائلن که اگر ما بخوایم این متن رو بفهمیم نه متن مهمه نه نویسنده مهمه نه قرض نویسنده مهمه فقط چی مهمه چی فهم من هر چی من میفهمم اون درسته خب سوالی نه خو من یه چیزی میگم تو هم یه چیزی میگی یه جفتش درسته سوالی نه. کدومش بهترم یه هر درست؟ درسته میگه کدوم بهترم یه هر جفتش بهتره این خودشه ای مبنای نظری یه مبنای میگه نه ما فقط فقط باید بگن دنبال قصد نویسنده یه مبنای دیگه میگه نه ما فقط فقط باید بفهمیم متن چی میگه اصلا نویسنده بب ببوس بذار کنار متن ببین چی میگه هر کدوم از اینا چیه واسه خودشون داستان داره هر کدوم از اینا واسه خودش روش داره هر کدوم از اینا واسه خودش قالب داره مبانی نظری داره واسه خودش داره یه عده میگن اقا ما اصلا توی تاریخ باید هر چی تاریخ میگه انجام بدیم ما مجبوریم به این که آنچه که بوده رو ادامه بدیم این خودش یه چیزی غلطه خیلی اینا غلطه ما به بلاازه اسلامی قبول نداریم برای اینکه ذهن باز بشه دارن میگن خو خب، یه علمیه دیگه این یه علمیه به اسم علم روش شناسی الان ما یه علم داریم به اسم روش چی علم چی روش شناسی ببین ما این این خوب شد پرسیم، یه یادم رفت بده ما یک عالم خارج داریم یک عالم ذهن داریم ما به وسیله ذهن و حواس خارج را می‌شناسیم بر روش شناخت خوا... به حرکت از ذهن خودمون به خارج خودمون حالا خارج که میگم با تسامح بعضیا میگن همین داخل ذهن بعضیا میگن با تعریف فکر حرکت داخل ذهن فلان بخوام حرکت رو بریم روشش چیه الان من میخوام مثلا آه. مثلا میخوام میزان علل طلاق توی فلان شهر رو بفهمم روشش چیه طلاق بیرونه دیگه من میخوام بیارم ببینم چه روشش چیه چهجوری بفهمم علل چیه؟ بلاخره یه روشی میخواد دیگه من میخوام بفهمم که آقا نظر قرآن در مورد فقه نظام چیه؟ یه روشی میخواد اصلا این که من بخوام به یه فهمی برستم این روش فهمه خیلی مهم که این به شما و تحقیق شما اعتبار میده اگر این نواشه تحقیق شما معتبر نیست حالا یا خودتون باید یه روش ابدا کنید یا از روش های ابدا شده بهره ببرید خود این که روش چجور بحث بحث میشه یه علمی هست به نام علم روش شناسی. ده یه علمیه، یه علم مفصلیه. یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد و شما شما نه چی؟ حالا ببینم. نوشتن خیلی باشه، باز هم که دوستان در مورد علم رمش شناسی برن یه کاری بکنن، این دو تا کتاب بخونن. تحقیل برای اینکه به تحقیل برسیدیگه یه قسمت از تحقیل تحقیل اصلی ترین قسمتی که یه تحلیل داره اون قسمت تحلیل محتویی که شما در آوردید یعنی بلخلا شما یه سری اطلاعات میاری حالا میرسید میرسید که یه فراین تحقیلی رو این اطلاعات انجام بدید اون اصلی ترین نقطه یه تحقیق. نه همش توی تطور کارهای علمی به وجود میاد. یعنی ما مثلا خواستی یک کاری بکنیم، بدون خب چجوری ما بعد بفهمیم چیه؟ مثلا مثلاً دارم میگم طرف میخواسته یه سوالی رو جواب بده، بعد میگه که خب ما 20 تا متخصص داریم توی این قضیه، توی این موضوع. چجوری بین نظر این 20 متخصص من جمع بندی کنم؟ نه استثنایی نیست اصلا. منظور تطور طب کث داره قطعا آره اینطور نیست که مثلا یه چیزی که مثلا روش های فکری اینکه اول قرآن بعدا مثلا حدیث بعد مثلا تضاحم رو چه رفت بکنیم تعارض چیه رفع جمع و مهما امکان بکنیم یا نه فلان اینا رو چه جور در آوردن که نبوده که در آوردن با کار علمی در آوردن خود اینا رو تجاوز بیشتر باز منطقاً مثلا تو منطقم مطرحه تو منطق هم منطق فهم منطق فهم منطق فهم, منطق فهم میشه یعنی منطق مثل هم فقط اون به تنهایی کافی نیست خصوصا برای درس‌های جدید الان این سوال مثلا تو صحبت تعفیر در مورد بیاناتم اخا می کنید کجای منطق به کارتون؟ به تنهایی یا منطق اثر داره؟ به تنهایی کافی نیست. بفهمید. <تصفح> مبانی فلسفی روش ها رو باید بلد باشد چون بعضی از روش ها صرف روش بعضی از روش ها مبانی فلسفی تأثیر داره در نوع فهم اون مبانی فلسفی رو باید بلد باشد که ببینید الان این روش از اون روش که تأثیر در فهم من دارد یا ندارد به هم میریزی زهن باست خیلی بنده هستم در خدمتون ولی اگر اجازه بدید تموم بکنم باز هستن یه سوالی با چه یه صلاوات بفرست.